دوشنبه 14 امروز افرادی که میان آوارهای سوخته دنبال جسد یا آستاخان بودند، حتی نسبت به دیروز هم زیادتر شده بودند. علاوه بر افراد ژنده پوش و نیمه برهنه، به شکل قابل ملاحظی افرادی به چشم آمدند که مانند اعضای اطفای حری، لباس پوشیده و بر بازوبندشان دسته امداد و نجات ویژه نوشته شده بود. افرادی هم بلندگو یا برانکارد خیزرانی داشتند. افرادی از فرماندهی منطقه برای نجات مصیبت زدگان آمده بودند. وقتی به شعبه تأمین لباس رفتم، همان رفتاری با من شد که انتظارش را داشتم. سوتوان دوم ساساتاکه درخواستم را تا آخر گوش کرد، بعد آهسته و آرام گفت: اینها درست آقای شیزوما، اما این محل باید به هر روشی از وضعیت فعلی خارج شود. با یکی شدن ارتش و ملت و با فکر و اندیشه می این سختی ها را بشکنیم. این مسائل متعلق به زمانی بسیار العاده است و میخواهم فقط با اراده نمایندگان ملت انجامش دهم. چون این سخنان انتزاعی هیچ دردی از منی که فقط دنبال توضیح سنگ بودم دوانه نمی کرد. بنابراین جناب سروان می توانید برای معرفی نامی به معدن او ببنویسید؟ از مقام ما خواهم خواست. اما تا انجام باز نشود نمیتوانم هیچ جوابی بدهم. به هر حال باید از این بحران خارج شویم. امکان دارد زغال انبار شده در او جینا را توضیح کنید همانطور که دیروز جواب دادم این کار به هیچ وجه امکان ندارد یعنی از حوزه اختیارات من خارج است. مانند دیروز هیچ روزنه ی امیدی نبود. فقط آنچه امروز فرق می کرد این بود که لحنش ملایمتر و خود کمتر شده بود اصرار بیش از این را بیفایده دیدم. وقتی از شعبه تولید لباس خارج شدم با گذشتن از آوار سوخته شهرک فکورو، مسیر تراموا را پیاده به سمت سازمان ارتباطات پیش رفتم همان لحظه نظامی که با گروه امداد را بر بازو داشت در حالی که فریاد میزد، هی hey, اینجا واحد نظامی کجین مقابلم قرار گرفت نیمروخ این نظامی را دیدم او هم سمت من برگشت خدای من آقای تاموتسو آقای شیزوما، واقعا یک ملاقات غیرمنتظره بود. آقای تاموتسو مانند من اهل روستای کباتکه بود. چند سال پیش به هنگ هیمه پیوست و پارسال شایعه شایعی استواری او در واحد بهداشت به گوش رسید. کلاه آفتابگیر نوعی سر داشت. شمشیر نظامی حمایل کرده و بر آستین پیراهنش هم درجه استوار اولی نصب آقای تاموتزو موفقیت بزرگی به دست آوردهاید به شمشیر بلند نظامی بسته اید. وقتی این را با تعجب گفتم با چهرهای به نظر درهم جواب داد مدتی قبل دستور انتقالم به هنگ فوکویاما داده شد اما روز هفتم ماه اود بار دیگر دستور انتقالم به اینجا صادر شد من سرباز واحد بهداشت وابسته به گروه امداد و نجات ویژه برای سامان دادن به امور آوار سوخته هستم دو نفر دیگر از همراهان آقای تاموتسو را هم شناختم یک نفرشان عضو گروه اطفای حریق آزاگه از روستای کوباتکه به نام موتسو او بود که بسیار کم حرف بود اما گفته می شد در اطفای حریق بسیار مهارت دارد آن یکی هم توکی یاسونا نام نام داشت و عضو گروه اطفای حریق بود گفته می شد مهارتش به اندازه آقای موتسو نیست هر دو نفر روز بعد از افتادن بمب در هیروشیما به دستور پلیس فراخوانده شدند و برای نجات افراد واحد نظامی کوجین تحت عنوان گروه امداد و نجات ویژه به محل آوار سوخت اعزام شدند. واحد نظامی کوجین واحدی متشکل از جوانانی بود که از دو منطقه کنو و جینسکی در شهرستان هیروشیما به خدمت فراخوانده شده بودند. این واحد، در کار معمولی برنامه پراکندگی خانه‌های هیروشیما ایفای وظیفه می‌کرد. آنها صبح روز ششم اوت در حال ترک آسایشگاه واحد نظامی شماره دو یعنی آسایشگاه موقتشان بودند که بمباران شد. از مجموع 21 نیروی متولد روستای تا که 18 نفر یا در دم جان باختند یا بر اثر سوختگی مردند. سه نفر به روستا برگشتند اما یک نفرشان به خاطر بیماری اتمی مرد. از کباتاکی علاوه بر اینها آقای آتسویاشی، آقای آساجیرو و افرادی دیگر هم برای کمک به برنامه پراکندگی خانه هیروشیما رفته بودند که اتمی رخ داد. آقای آتسویاشی و آقای آساجیرو به خدمت فراخنده نشدند، بلکه خود دافتلبانه آزم هیروشیما شده بودند. یادداشت اضافه شده. آقای موطسعو، بلندگو را با تنابی به گردن آویزان کرده و همراه آقای ماسارو برانکاردی را گرفته بودند که دسته از خیزران سبز داشت. آن دسته های خیزرانی از های معبد کانان در کباتاکی هستند؟ چه دوست داشتنی اند؟ این را که گفتم آقای ماسارو جواب داد ربطی ندارد این است که پلیس شهرک میاشیده. ظاهرا اعضای گروه امدادی که آقای موتسوئو و آقای ماسارو جز آن بودند مستقیما از روستای کاباتاکه به این آوار سوخته نیامده بودند. اول با فراخان دهداری کاباتاکه در محل دهداری جمع شده و بعد به شهرک یوکی رفتند. در محل شهرداری حاضر در دستور قید شده بود باید اعضای گروه اطفای حریق با لباس فرم حاضر شوند و با افراد دیگری که از روستاهای همجوار آمده بودند یک جا جمع شده بودند. شهردار موعظه‌ای با عنوان بالا بردن روحیه جنگجویی سربازان توسط مردم پشت جبهه برای آنها ایراد کرد. همگی از آنجا به شهرک جاگه فرستاده و در آنجا دوباره با سایر افراد حاضر ادغام شدند. سخنرانی شهردار را گوش کردند و بعد به میوشی اعزام شدند. در اینجا دوباره با افرادی دیگر یکی شدند که از روستاهای نزدیک گرد آمده بودند. باز هم شهردار اینجا برای آن‌ها کرد. و گفت شما اعضای گروه امداد و نجات ویژه هستید که به آوارهای سوخته هیروشیما اعزام می شوید. در این اوضاع وخیم ملی شما دلاورانی هستید که وظیفه خود را به خوبی انجام خواهید داد از روستای کباتاکه برای شهرک های یوکی و جوگه قطار وجود نداشت پس تا جوگه با کامیون زغالسوز از جوگه تا شهرک یاگا با قطار آمدند بین راه کسی از اعضای گروه نبود که بخواهد اعتراض یا فرار کند. وظیفه اعضای گروه کمک به همه مصیبت زدگان بمباران نبود. وظیفه آنها نجات و کمک به افراد واحد نظامی کوچین بود که از روستاهای مناطق مختلف به هیروشیما اعزام و بمباران شده بودند. برای عوض کردن وضعیت با گفتن خسته نباشید به آن دو تعظیم کردم. به استوار تامتسو هم با گفتن خسته نباشید تعظیم کردم. فکرش را که می کنم میبینم دیدار غیرمنتظره عجیبی بود. آقای تاموتسو گفتند. واقعا غیرمنتظره بود. من از گروه نجات روستای کوباتا و روستای تاکافوتا هستم. الان در جستجوی مصیبت زدگان بمب اتمی و بردن آنها به بیمارستان سازمان ارتباطات هستیم. تا حالا فقط پنج مجروح از روستای کوباتا پیدا کردیم. آقای ماسارو گفت ما پشت سر هم با بلنگو داد میزنیم. صدای آقای موتسو گرفته است. این بار با برنامه تر داد میزنیم. همراه این افراد پیاده به سمت بیمارستان سازمان ارتباطات را افتادم. کاملا اتفاقی این کارها پیش آمد. فکر کردم در کارخانه که مفید واقع نمی شدم. پس بهتر است امروز به این افراد کمک کنم. آقای موتسو بلندگو بلنگو را جلوی دهانش قرار داد. ده. و در حال راه رفتن فریاد میزد. هی، hey, کسی از واهد نظامی کوجین متعلق به روستای کو منطقه جینسکی اینجا نیست؟ واهد نظامی کجین از روستای تکافوتا؟ هی hey, کسی از واهد نظامی؟ همانطور که قدم می زدم برای شنیدن جواب سرم را به اطراف میچرخاندم. اما آنچه به چشم آمد تکه های سفال دیوارهای آجاری فرو ریخته، اسکلت ماشین ها، خطوط انتقال برق که مانند تورهای ماهیگیری آویخته برای خشک شدن آویزان بودند، خطوط ترانوا، تیرکهای سوخته، گافسندوخ های سوخته، چارچوب های پنجره زغال شده و غیره بود. ناگهان استوار ایستاد. آن شاید ای باشد. نگاه کردم. بر ترانوایی که سوخته و تبدیل به اسکلتی فلزی شده بود، چند برگ اعلامیه چسبانده بودند. وقتی استوار سمت آن اسکلت رفت، من هم با ترس نزدیک شدم. رول کاغذ را به شکل مستطیل بریده و با چسباندن آنها روزنامه دیواری درست کرده بودند. استفاده از این نوع کاغذ در هیروشیما باید کار روزنامه ها باشد. متن یکی از این آگهی را در دفتر شم یادداشت کردم. اطلاعیه ستاد فرماندهی نظامی ناهیه غرب در ساعت یازده صبح روز نهم ماه اوت، دو هواپیمای بزرگ دشمن به حریم هوایی شهر ناگاساکی تجاوز کردند و نوعی جدید از بمب انداختند. جزئیات خرابی ها در دست بررسی است اما برآورد می شود ناچیز باشد. در یک برگ دیگر این طور نوشته شده بود: دهم ماه اوت، فرماندهی امنیت هیروشیما، اطلاعیه برای شهروندان در مورد های احتمالی یک دوم آب دریا را رقیق کنید و دوش بگیرید. با مخفی شدن می توانید برابر چنین حملاتی مسون بمانید. در حال حاضر امکان استفاده از خطوط تراموا و بزرگراه‌ها وجود دارد. اعلامیه کناری آن هم به قرار زیر بود. اطلاعیه ستاد فرماندهی امپراتوری یک دیروز یعنی ششم ماه اوت شهر هیروشیما به وسیله تعداد کمی هواپیمای به 29 دشمن متحمل خساراتی شد. دو ظاهرا دشمن در حمله یاد شده نوع جدیدی از بمب را استفاده کرده که جزئیات آن در دست بررسی است. در قسمت سفید کاغذ با زغال چوب نوشته شده بود: دهم ماه اوت، شرکت شوروی در جنگ که احتمالاً طعنه بود. به نظر می رسید این نوشته را با قرار دادن صفیه فلزی زیر آن نوشته بودند. این نوشته بسیار بدخط با زغالی نوشته شده بود که همه جا در دسترس بود. هر طور نگاه می کردم به نظر تن و ریشخن می آمد. اما نمی توانستم فکر کنم خبر شایعی بی بیاساس است. فکر کردم آیا در آمدن به جایی که سرانجام باید می آمدم عجره نکردم؟ آیا خودم در آن موقعیت قرار نخواهم گرفت؟ گونه سوختم درد گرفت. به خوبی احساسش کردم. حتما این روزنامه دیواری ها از دو تا سه روز قبل در مناطق مختلف چسبانده شده بودند. چرا تا حالا متوجه آنها نشده بودم؟ استوار و آقای مدسوعو با چهره گرفته حرکت کردند. ما چهار نفر خاموش قدم زدیم. وقتی نزدیک بیمارستان سازمان مخابرات شدیم، آقای مدسوعو با خودش زمزمه کرد. آب دریا را یک دفوم رقیق کنید و خود را در آن بشویید. این بیمارستان هم مانند خرابه بناهای سبک غربی شده بود. با نگاه از ورودی آن هم می توانستی بفهمی که مجروحان بسیار زیادی در آن پذیرش شدند. توانستم ببینم افرادی با لباس جراحی با گرفتاری زیاد از راهرو می گذرند و مجروحان هم لرزان راه می روند. زنی روی پله‌ها ایستاده بود و بدون هیچ دلیل قابل فهمی فریاد می‌زد. به نظر می‌رسید دیوانه شده. افرادی هم گروه چند نفری تشکیل داده بودند و می‌گفتند از شهرستان برای جستجوی بستگانشان آمده‌اند. آقای تاموتسو به من گفت جلوی ورودی بیمارستان منتظر بمانم و همراه آقای موتسو او به اتاقی وارد شدند که به نظر می‌رسید پذیرش بیمارستان باشد. مدتی که گذشت، بیرون آمد و گفت ما بیمارستان را جستجو می کنیم. شما جزء گروه امداد و نجات نیستید. پس همینجا منتظر بمانید. باید مصیبت دیدگان بمباران متولد کوباتا که در این بیمارستان پذیرش شده باشند. این را گفت و همراه آقای موتسو به ته راهرو رفتند. در آن لحظه زنی که به نظر دیوانه می رسید و آقای موتسو و آقای تاموتسو حرفهای عجیبی مانند نفرین نثار کرد. در انتهای پله های سنگی ورودی دو زن نشسته بودند و با حرارت صحبت می کردند. هیچ کدام زخمی به نظر نمی رسیدند. هر دو لباسی زمخت به تن داشتند و روی شلوار کارشان که های پلاستیکی گودی پوشیده بودند. با توجه به حرفهایشان یکی از آنها همسر مردی زخمی بود که در بیمارستان پذیرش شده بود. دیگری هم ظاهرا خواهر بزرگ مرد زخمی بود. هر دو هم با اغراق حرف می زدند. با توجه به حرفهای آنها قسمت اعظم نیروهای شوروی با نقض حریم مرزی منچوری و روسیه چون موجی به منچوری هجوم آورده بودند در مقابله با آنها نیروهای ژاپنی مستقر در منچوری پیکادونی بر سر نیروهای شوروی انداختند که مانند آنچه بود که به بیست و نوها در هیروشیما انداختند ظاهرا ژاپنی ها تصمیم داشتند در جزایر جنوبی هم که در اشغال ارتش آمریکا بود این بمب را بیاندازند حمله ای انتقام جویانه بود میگویند در حال حاضر نیروهای خودی مشغول ساخت مخفیانه آن در جزیره در آبهای ساحلی شهر تاکهارا هستند ژاپن علاوه بر نیروی زمینی نیروی بیرقیبی دارد که به زودی قدرت آن را به رخ دشمن خواهد کشید از صحبت های آن دوزن علاوه بر اخبار شرکت شوروی در جنگ توانستم یک قسمت از اطلاعات داخلی را هم درباره این بیمارستان بفهمم. دکتر هاچیا میچیکو رئیس بیمارستان هنگام پیکادون بر اثر تک شیشه های پرتاب شده و الوار در سی قسمت بدنش دچار صدمه و جراحت شده بود. پاها و کمرش قادر به حرکت نبود. پس در حالی که روی تخت یکی از اتاقهای بیمارستان خوابیده بود آنجا را اداره می کرد. چون بی اشتهایی، استفراق، اسحال، مطفوع خونی، و سایر عوارض بیماری زخمی ها به وضعیت بیماری رئیس بیمارستان شبیه است و زیاد بروز می کند رئیس بیمارستان استدلال کرده که در بمب جدید گاز سمی یا میکروب بیماری اسهال خونی وجود داشته است. بنابراین او همیشه از پزشکان داخلی میخواست تا اقدامات جلوگیری از شیوع این بیماری را انجام دند. به معاونش دکتر کویاما هم دستور داده بود تا خیلی سریع بسازد. دکتر کایاما خوشبختانه فردی است. او متوجه این واقعیت بود که در چنین دشت سوخته ای جز نظامیان کسی قادر نیست ساخت و سازی انجام دهد. او با درخواست از سازمان ارتباطات، با فرمانده عالی آنجا ملاقات کرد و با به کارگیری نظامیان توانست در بخش جنوبی بیمارستان سرپناهی موقتی برای قرنطینه دست و پا کند. کارها آرام آرام پیش میرفت. در اطراف این بیمارستان نیروهای مشترک غرب، واحد نظامی شماره دو غرب، مدرسه کودکان، ستاد فرماندهی فنی مهندسی ارتش و سایر ساختمان های مهم نظامی قرار داشت. اینها همه به وسیله پیکادون از بین رفتند. این اطراف برای دفاع و مقابله با دشمن در صورت حمله زمینی در نظر گرفته شده بود. به این دلیل هنگام بلند شدن آژیر خطر حمله هوایی جملات هواپیما هواپیما و فرار فرار در بین زخمی ها زیاد شنیده میشد. نزدیک به یک ساعت روی پله های سنگی نشستم و منتظر ماندم. احساس کردم زیادی محتل مانده وقتی وارد ورودی شدم، بشقابی به چشمم آمد که بر لبه پنجرهی کوچک گذاشته بودند و برای افروختن آتش مورد استفاده قرار می گرفت. هرچند پر روغن گیاهی بود و نوار پارچه ای دارش بسته بودند. اما بشقاب لعابی سرنگی بود که به نظر می رسید تا حالا در صندوق نگهداری شده است. آقای شیزومامون منتظرتون نگه داشتیم. با این صدا برگشتن. در برانکاردی که آقای موتسعو و آقای مسارو در دست داشتند شخصی خوابیده بود که حتی قدرت ناله کردن هم نداشت. در واقع به نظر می مرده باشد. بر پارچهی که به دو دستش پیچیده شده بود خالهای سیاهی دیده شد. گونه هایش به رنگ ارغوانی آماس کرده و نمی بفهمم چه کسی است. در قسمت سینه پیراهن مندرس و پارش کارت دست نویسی با سنجاق الساق و بر آن نوشته شده بود. شهرستان هیروشیما، بخش جینسکی روستای کباتاک، عضو واحد نظامی کجین، هاندا چوزو آقای چوزو، از خانواده صاحب فروشی موسوم به خارابارفروشی دهانه در است. در کودکی از پدر این شخص روش سید مارماهی را یاد گرفتم آن زمان برای زیافت در حین ماهیگیری آموختم که جوانه های نورس خیزران را بچینم روی آتش در ساحل رودخانه کباب کنم و بخورم جوانهها را بدون کندن پوستش کباب می کردم بعد پوستش را جدا می کردم روی جوانهایی که بخار از آن ما بود میسو می و میخوردم. این میسو را از نزدیکترین خانه میگرفتم. آقای چوزو روی برانکارد بوی تفونی مثل بوی تفون خون میداد که خفه کننده بود. بوی چرک یا بوی حرارت بدن به هر حال بوی بد عجیبی بود که نمیتوانم توصیفش کنم. از آقای موطسو خواستم که به جایش برانکارد را حمل کنم اما آقای موطسو جواب داد ربطی ندارد فصیفه هم را به گروه امداد واگذار کنید استوار تاموطسو در حال قدم زدن جلوی برانکارد با بلنگو فریاد میزد ای از واحد نظامی کجین کسی نیست؟ ای از رستای تاکافوتا کسی نیست؟ برای اینکه که رو به باد باشد در کنار آقای تاموتسو قدم می زدم. آسمان به حد ترسناکی آبی بود به گفته آقای تاموتسو کسی که مدتی قبل در بیمارستان سازمان ارتباطات و در میان انبوه بیماران آقای چوزو را پیدا کرد پزشکی به نام نوری آکاین انریو بود بیماران زیادی به بیمارستان وارد شدند و راهروها پر از بیمار بود به شکلی که افرادی که برای پرستاری یا جستجو آمدند جای گذاشتن پا هم نداشتند تب بیماری پیکادون قدرت سرایت داشت، پرستارانی بودند که در ظاهر هیچ بیماری نداشتند، اما زودتر از بیمارانی مردند که از آنها پرستاری می کردند. اینجا و آنجا همزمان چنین وضعیتی وزیعتی حک فرما بود. در میان این بی و هر جا مرج به لطف دکتر نوری اوکا چوزو پیدا شد. آقای تاموتسو گفت، این دکتر یعنی دکتر نوری اوکا انریو؟ دکتری بسیار خیرخواه هستند. دکتر نوری اوکا از سازمان ارتباطات اوساکا اعزام شده و رئیس گروه امداد بود. او همراه گروه امداد با کود پشتی های پر از اقلام امدادی دیشب به بیمارستان سازمان ارتباطات رسیدند. روز قبل از آن یعنی روز هشتم، نظامیانی از جای آمده و مخفیانه داروها و نوارهای زخم را برده بودند. بنابراین یکی از پرستاران، آمدن گروه امداد را حضور بودا در جهنم توصیف کرد. آقای چوزو روی برانکارد وقتی به محل اصلی و موقتی گروه امداد رسید مرده بود. کاملا نفسم گرفت. هنگامی که برانکارد در ایوان به زمین گذاشته شد استوار تامود را گفت و با گذاشتن دست کنار شقیقه ادای احترام نظامی. آقای ماسارو از کنار لگن دستشویی برگردی سیاچید کنار سر مرده گذاشت و همراه آقای موتسو با گذاشتن کف دست بر هم دعا کردند من جملات هاکوتسو را خواندم وقتی تمام شد آقای موتسو گفت خب میسوزانیمش. دوباره با کمک آقای ماسارو بران را بلند کرد اینجا مرده ها را نزدیک خطوط راه آهن می بردند و می سوزندند محل اصلی و موقتی استقرار گروه امداد خانه شخصی نزدیک کوه پایه کوه فوتامی بود که روبروی آن پادگان شرقی دیده می شد صاحب خانه رئیس مدرسهی بود که صبح زود از خانه خارج می و یک شنبه ها هم برای خدمت به جایی می رفت. او در طول روز خانه نبود. این افراد گروه نجات به ندرت شهره او را میدیدند. نام پسرش مینارو بود. پسرش افسر ارشد نیروی دریایی بود و به نظر می روی عرشه کشتی در دریا باشد. همسرش روشنفکر و زنی با کمالات بود. علاوه بر این دو دختر مهربانشان هم بودند. همه خانواده واقعا خوب بودند و در مقابل اعضای گروه امداد نیز پیش زخمی های واحد نظامی کجین یک بار هم رفتاری زشت از خود نشان ندادند گروه امدا در حین عبور این خانه را دیدند داخل خانه وسیع به نظر می رسید پس بدون داشتن هیچ معرفی و بی هیچ مقدمهی درخواست کردند آن خانه را برای اسکان مصیبت زدگان واحد نظامی کوچین اجاره کنند آن زمان آقای خانه حضور نداشت اما همسر و دخترانش در خانه بودند همسرش با گفتن درک می کنم آنها را پذیرفت. به حد حیرت آوری زنی از خود گذشته بود. اتاق هایی که گروه امداد و نجات اجاره کردند، چهار اتاق به وسعت هشت تا تامی در طبقه پایین بود. افراد گروه امداد به علاوه مصیبت زدگان واحد نظامی کجین در مجموع پنجاه نفر در داخل و بیرون بودند. این شامل افرادی هم بود که سوخته و نزدیک به مرگ بودند ناله سر میدادند، مدفوع خونی داشتند و بوی تفون ناشی از چرک و تب بدن ازشان بلند می شد. به گفته آقای تاموتسو، با وجود همه این مشکلات، همسر و دختران خانه با پرهیز از خوابیدن در طبقه دوم شبها در آشپزخانه می خوابیدند. فقط آقای خانه در طبقه دوم می خابید. در ایوان نشستیم و در حالی که ناهار میخوردیم، با اقای تا مووع درباره فردا صحبت کردیم. به خاطر اینکه صدای زخمی ها را نشنوم در قسمت روباز ایوان کنار لگن دستشویی نشستم اما بوی بد تا آنجا هم میآد. صدای ناله دو سه نفر بیوقف شنیده می شد و ناگهان و بر خلاف انتظار صدای فریاد فرار فرار هم شنیده شد با نوی خانه فنجانی چای گندم آورد و با حالتی که معدبانه نبود و در عین حال. خارج از نزاکت هم نبود گفت خسته نباشید هرچند چای گندم چندان سردی نیست اما لطفاً بنوشید بعد تعظیم کرد و رفت نگاهی به صورتش انداختم و آرام از پشت به هیکل بسیار متناسب او نگاه کردم با آقای تامودسو قرار گذاشتیم که ظهر فردا به اون و او را برویم امروز از پذیرشگاه اون و او را واقع در سالن اجتماعات مدرسه اون او را با دفتر اصلی در اینجا تماس گرفتند و گفتند آنها اشخاصی از واحد نظامی کوجین به نام توراو از آزامیت در روستای کباتکه و چوجورو از روستای تاکافوتا را پذیرش کردند. افراد یاد شده اصرار دارند هرچه زودتر به زادگاه خود برگردند. یکی از آنها که به شدت زخمی شده بود به سختی می توانست حتی خوابیده هم برگردند. به هر حال آنها میخواستند اطلاع دهند زیرا فکر می کردند ممکن است این اطلاعات کمکی برای مرتب کردن فهرست زخمی های واحد نظامی کوجین باشد لازم بود از مقر رسلی کسی به اون و او را اعزام شود این وظیفه را به جان خرید.